بسم الله الرحمن الرحیم بنامی خداوندی بی اندازم حبان نهایت باره قسم می خورم به روز قیامت و قسم می خورم به نفس ملامتگر که برانگیخته می شود آیا انسان می پندارد که استخانه های او را دوباره جمن نخواهیم کرد؟ آره قادرم به اینکه حتی سرانگوشتان او را به شکل اول آن برابر کنیم بلکه انسان میخواهد خواهد به وسیله این از قیامت خود را از قید پابندی به احکام شریعت خلاص کند تا در دوره زندگی که پیش دارد آزادانه به اعمال ناشایسته دستیازد از این رو با این کار می پرسد چی وقت رستاخیز می شود؟ آری هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره گردد و خورشید و ماه با هم جمع کرده شوند در آن روز است که انسان می گوید پناهگاه کجاست برگز نه پناهگاهی وجود ندارد و تنها قرارگاه در آن روز به سوی پروردگار توست در آن روز انسان و آنچه از پیش فرستاده یا به عقب گذاشته خبر داده می شود بلکه انسان برخیشتن بینا می باشد اگرچه عوضرهای خود را پیش کند زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده تا بدین وسیله با آن شتاب کنی او واقعا جمانمودن آن و جاوی شدن آن بر زبان تو براهده ماست پس چون آن را خواندیم، خواندن آن را پیروی کن سپس به و توضیح آن نیز براهده ماست نه چنان است که شما می پندارید بلکه زندگی عاجل یعنی دنیا را دوست دارید و زندگی آخرت را به یک سو میگذارید در آن روز ای بسا روحها که شاداب و تر و تازه است و به سوی پروردگار خود نظاره کنانند ای بسا روحها در آن روز در هم کشیده است تو گویی که بر آنها بلیه کمر شکنی آمده نیست نه چنان است که میپندارید هرگاه جان بلب برسد و گفته شود کیست افسون خان و چنین میپندارد که این لحظات جداییست و از شدت درد جان دادن ساقهای پاها با هم یک ساق و ساق دیگر بپیچند سمت حرکت در آن روز به سوی پروردگاریم چون نه حق را تصدیق داده و نه هم نماز خوانده بلکه دروغ گفته و از حق روی برتافته و باز به سوی خانواده خود خرامان رفته است افسوس است به حال تو و باز افسوس است و سپس افسوس است به حال تو و باز افسوس است آیا انسان میپندارد که به حال خودش واگذاشته می شود آیا نطفه ازمنی نبود که در رحیم ریخته می شود سپس پاچه خون بسته ای بود و باز خداوند او را فرید و برابر کرد. سپس از او آن دو جوره مرد و زن را میان آورد. آیا این خدایی که همه این کارها را کرده است قادر نیست که مردگان را زنده کند؟